بله ارس نمسین غزالت از چلشیش بود ساخیر باده از این دست به جام اندازد عارفان با همه در شرد مدام اندازد بر چنین زیر خن زلط ندامه خال ای دست ها مرد خیرت را که به دا دام اندازد این دوتا را مثل اینکه که گفتیم ولی ای خوشا حالت آن منست که در پای حریف سر و نداند که کنه آمان داده ای و اون علف هر دوش علامت است. ای خدا کی طرف خطاب بودن قرار میشه حرف نداست علف و آخر اسمم که در میاد اونم حرف نداست خدایا ملکا ملک ها ذکر تو که تو پاکی خدایی که شیر خدا میخوندیم و قشنگ در صبح بردش تو پاکی خدایی سور صنایی ملک ها ذکر تو که تو پاکی خدایی نروند در همان راستی تا هم راه و در دوره بچگیمون ما بیاد بریم از کنیم که ملک ها شاه خدایی الف ندار بلی اینا دو تاش هم نمیاد، میگن ای خدا یا خدا یا ای خدا یا نمیگن، ای شاه ها نمیگن، یکی یا اون میاد اون اینجا داریم ای خوشا این ظاهرا حرف ندا نیست، حرف تحکید نیست، یعنی خوش به حال اون ای خوشا برای اینکه محکم بخونه حقش رو یعنی چقدر خوش است حال اون نستی که وقتی میخواد به حریفش چیزی تقلیم کنه نمیشنه که این سرشه یا دستارشه یعنی اون چیزی که به سر میبنید حالا امامه را نیشه ولی توجه رو فرمد که بیشتر مردم یه چیزی دور سرش میزردن الان عمله هایی هستن بشاره ها حال زابول از زابول میخوانند 300% 3000 کلومتر 2000 کلومتر را میاد گردان اونجا عملگی میتونه یه چیزی دور سرش بستی کنی سفید این صفرش هست زیرش میوزه میخوابه روش میکشه به جای شمه نوم هزار دور استفاده از این میکنه اینو بشه میگن بست دار این آخون که میزه این درش ميوانده. اون که میپیچن بسترشون بشه میگن بست و معمولا مردم بست دار داشتن سقط اعیان و کسان که کار دولتی داشتن و همثال اینا کلاه بسترشون نیست و داستانی رستم و توهراد باید بسیم که تو رستن به شهر سمنگان بسید خبرزو و شیره بلینکان بسید پرگیره شدندشت بزرگان و شاه کسی کوب سر برنهادی کلا یعنی احیان شهر آمدن استقبالش کلا آزا این و چپال و مردم حادی سرشون نمذاشتند تا این اواخر هم همه مردم یه چیزی دور سرشونی بستن بر خود تهران و مثلا تاجرا عمامه شیشیکری تارسین یه پارچه محسوسی بود که نشون میدادیم جز سمت تاجره یا کسان دیگه همینطور و یه سیلی بود که تا, تا ساله بعد از شهری بود این نونگا بود اصلا هبریزی هم بود آدم قطبولند ایرنا سیفستاده این نوبا بود اصلا نمیدونم ثواد اصلا داشت یا سوادم نداشت یا ای داشت ثواد جزئی داشت همهار. این حال این امامه داشت و اوادشت و, و فکر مثلا مدرسل اسلامی وارد خودش خیلی هم سختش بود امامهشو برداره وقتی دوره رزواشه بستن آه کسانی بس که حالی اینکار نیستن امامهشو بردارن ولی این نراحت می که همهار و رو از این سیره کنید این که اون که اون, اون دیگه همین اصطلاح رو می دونی که کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن هر دو معنیه بودن دیگه برای اینکه همین دیگه یا کلاه کسی رو بردارن که ملیم یعنیم چیز رو بردارن دیگه میره کلاه گذاشتن سرش هم برانه که کلا دوزخ میرد دو کلا بخری برانه میشه این کلا رو سر تا بذاره حالا تنگ بود گوشاد بک تنگ بود خوب میشه گشاد گشاد را جمع شرف میکنه بعد یه جوری اینه که کلا سر کسی گذاشتن برانه یه فرید حالا کلا نیست میشه دستاره میگه خوش آه به حالت اون مستی که در پایه هریتش نمیدونه سر رو بیان روی دستار یعنی اینقدر از خودش بیان. حالا این رو اگر رو معنی مصبو یعنی مصبو آبی، از آب و انگور بگیم. خب حالات خوشیه که حالا بعد می‌رسیم که احتمال این هست که همین مصبو آب و انگور باشه. اگر به اون معنی جزوی الهی هم بدیم، بازم یعنی واسه کمال الهی که خب خیلی خیلی اونم مهمه. اگر برای سزات سر و دستار یعنی سراموش میکنه که این سر یا دستار رو از شدت خودی که ها دیگه هم حفظ این حالات شدت مستی اشاره کرده میگه مستم کنن چنان که ندانند زدی خودی در عرفه خیال چه آمد کدام را یک چیزه نبینه روز در کسب هنر کن اینجا این دستوره این شب خوردن روز خوب نیست دل و سیاست بنابراین این اگر میه عارفانه بشه, بشه, بشه, بشه, بشه, بشه, بشه, بشه ارثانی که شب روز نبره میه عرفانی که نایی از جذب الهی یا نشستن برای اینکه که بر دل نشستن که از عالم قید یک گشاهشی حاصل بشه این روز شب نبره بنابراین این که میگه که می روز در کسب هنر توش که میخوردن روز دلشون چون بر زنگ ظلم اندازد، دل حاینه وشه تروسیاه می‌کنه می‌خوردن روز، برانه از که روز آدم باید به کار جدی خواست. حالا هر طوری هست. قاسب باید تسبش برسه. محسل باید درتش برسه. عالم باید تحقیلش برسه. به هر حال روزی در مستی سفری کردن نشونه می‌شه اون روز رو زایع کرده و این کار خوب نیست دلشون آینه رو سیاه می‌کنه چه وقته میگه هم زمان وقته می صوب فروب می صوب فروب صوب فروب صفتی برای می مرکب هم از دو اسم صوب فروب یعنی می جه مثل صوب فروب میده روشنه هم زمان وقته می صوب فروب شب به گرد خرگاه افق پرده شام اندازه فرنگیان که این دارم یه حفی آور دارن <تصفيق> یعنی این صحب ورد میشون میخور این از که میگه وقت نیصوب دروف وقتی که شب پرده شام رو بیا اندازه به دور خرگاه افق به خرگاه قبلا حرف داده بودن حالا خیلی مختصر میگم میدونید که وقتی لشکار وقتی یا ایلات عشایر که تمام زندگیشون در یافنه چادر دارن دیگه همشون خیمه دارن یا چادر دارن ولی اون رئیس ایل سراپرده داره برا یعنی منزل پردن این پاکی براپرده چادر از این چندین نفر بعد می سرپا میکردن با سنافهای متعدد میگفتن توشن مثل دیوار تی جی اتاق پذیرایی داشت اتاق خواب داشت اتاق نشیمند داشت تحصیل می‌شد به جاهایی و دستایی بود دیگه این رو اگرم خرگاه بدیم خر مثل گفتن خر اگه بسیار صفتیات به معنی بزرگی باز بهش خربت بست یعنی مرغاوی بست یعنی اردن مرغاوی ها خربست یعنی خواهد مرغاوی بزرگ خرپشته یعنی پشته بزرگ ارز کنم که خرزور خرپول خرپول اینه آن که خیلی پیده و اینا خلاصه پیدا اگر اسم بشه اسم اون حیوان که اون حیوانم اسمش اولاد نیست اولاد کلمه مغولیس به معنی وسیله حمل ناتو، وسیله حمل ناتو، وسیله حمل ناتو باره، اولاد میگه که مثلا تو جامعه تاریخ باشیم میگه که کلان امیر دست زده بود مرکبات مردم رو به اولاد می‌جرفتند. یعنی اصلا مردم می گرفتن روش بار می شود و منشان می و چون بیشتر خر کارش بار بردن بوده تا هنده نقلاهادن خر رو بشکستن اولاق ولی مثلا شما در تمام سعدی یه بار اولاق بدونه که کنیم جه خر بطار دارد اولاق اصلا نیستی سعدی مثل این خر اگر چه بیتنی زد چون بار همی کشت از گاوان خران بار بردار بهزادانیان مردمان شد خیلی جدید لفت مخلی اگه اسم باشه معنی اون اگه باشه معنی بزرگ و بسیار و زیاد و می خرگاه... یعنی سرافر بود مجده. خیمه خرگاه خیمه چوا من مردوم خرده است تا با با با گفتن اگر به اون معنی بگیریم من نگفتن اگر به اون معنی بگیریم هم معنیش رو گفتن بله بله, بله. اون انسان هم وجود داره بله برای این که بلاخره یادتون داشت اینو معاید براموش میکنین اون مطال حافظی آدمی بوده اینه این اینه همه بزرگان دنیا گفتن پیغمبر عکم مثل آه از قول خدا میگه به مرزم میگه بهشون بگو که من یه بشری ازم مثل شما فقط من وحض میگه یعنی من ارتباط دارم و این ارتباط هم خیلی ساده مغزش به جوری بشه خودش خانه شده من که نبیدیم اگه خیلی آدم حالا که این کار داشته بشه خود پیغمبر خانه بوده که این پیام از عالمی خیلی میگه سبه او وحضیسه دیره این ادباه ب ولی میگونم پشر دیگری اصلا مثل دست شماهایی و خود هم میگه میگه بالی ما الله نفر داستی و جا و زینب برسن یه وقتی بر یه حالی بود که جز خدا هیچ کس دیگری به و هم نفس و نبود یه حدیث درینگلی ما وقتون لا یسعونی که ملکون مغربون و لا نبیجون مرتبون ای من با خدا یه اوقاتی دارم که در او هیچ ترسیه نمیکنه خدا و هیچ نمیتونه من بر در اون در اون موقع نیگنجی یعنی اختصاصان گاهیان خب آنکه عالم اول امروز هم آلم آمدی، آز که عالم ماست بخواش آمادی کلمینی یا هم ایران میذبیم نه زایشان میگن کهشده که هر زمان هر تازه کلمینی یعنی وانه تا کلم کن یا هم کامیران همین سواخه کسی بود اوی شبو میگفتید برحال اینا همشون گفتن آومای آدم هستیم نیست اونهایی گفتن حافظم همینطور بیده سقراتم همینطور بیده هم همینطور بید. ما بعد این شعرهای آسمانی رو میگنیم یاده هم میره این بچه بیده مادرش این رو زایده خراب میساریده پانه شمی شستن بعد بود کار شده راه بگی بعد بایدن پچه بگی گر زده یکی وزرگ بعد نکب رفته احمان از بالاش کوتن کردن که اومده بالا بعد جوون بوده جوونی در حدود حالا یک تفتهی جرا رفته که نبوده یک آدم بوده مثل کاغوی آدم اگرم باز این اولمون نمی نمیدیده این نقصش نه کنالش و کسی تو این جنوی احمده باید تجربه مکنی کرده هر کن که نداره بیشاره خود که میگه ولی خب بعد به مراقل سوی بگیم که خواد جاپه این که هر شب مصد و ایران چشمش که های نداره این دستاش برای خونهش میدهتن تیام که من دیوانه آبی سن ناتم. کی باغت کشید بارتن یا کشید بارتن ارزش دور. مثلا من بنده آن دمم که 100000 واحد یک جام دیگر بگیرم. من ناتم. هر خب اگه خیام اینجوری که خیام نمی‌شد میگن متعقل و تفتازانی رو یک کتابی این قطعه، بعدم این برادی بزرگ در حدود دیویس پر دیویس پر دیویس پنجا برد. این, ست، این ست ست. در عربی گفتن اینو در نیشافور یه بازاره خیام خوندن در اسمهان پغیر کرد، نوشتن یک چند مورد کتولی اصطلاف یه همچیز به بعد این عالم ریاضی بزرگ صحبت این هست در همام یه فقیه به حاکم شرط اون حاکم آدم حاضر بوده ولی سردسون تقنیم همون بودن ران بست بس بس بودن کتاب آدم لفت سر یه آیه یه معنی یه آیه یه اختلاف میشه. قیامت فقط در گرمتونه میاد تو، وقتی میاد تو، اون حاکم میگه علال خبیره فقط اصنا یعنی به آدم تایب خبری پرکوردی این میتونه روی نماز بعد میگه میگه ما اختلاف داریم، هر این آیه من میگم این جوره این جوره, این جوره من اینجوری میخونم من اینجوری میخونم شما چی میگی میگه خیام های رو خون تمام وجود اختلاف آیه را سراغت خون که نمیدونم هاستم اینطوری میگه بن گنم عبد الله اینجوری میگه کسائی اینجوری میگه همان گراه رو هر کدوم اون گراهتشون جده جده گفت بعدم گفتش که به نظر من این وجه از هنه بهتر نظر خطیبات که میگه که اون حاکم رو خباقا امثال فروز یاد کنه ما تصفر نمی کردیم که هیچ مغری یعنی کسی که شکلش اصلا و تخصصش گراهته این مثال الله خوشه این پاچه رو سا به شکر ریاضیات آباد هر شب سکولاتیشن شد و باشند من در خونش من دوستن چه از چه از چه از چه از چه از چه از چه از چه از چه از چه چه از چه از از چه از ولی ولی ولی نه دیگه او قنزل قنزل مربوط به احساسات شخصیه شاعر عرضی میخواهد که توهم میخواهد هنر اصلی حافظ یعنی شما رو به خیال میخواهد که اینه یا اونه این کارش اصلا نمیده و اصلا هنر اگه به هم نوشته هنر نید باید یه مقداری هم خواهنده درش شریک بشه این خوب میکینده که عرق خوره بگه ها این عرق خوره بگه یکی سیگه هم بگه ها هیچ کفرگوی ویسی این ندارین حالا یک سیگه هم بگه ها هیچ آخون بگه <تصفيق> هم نبیدین الاخر همه شما این است که این که بشه دو وقت در یک شعرش این خوب بشه می دونن که شما دلیل خباست ازاثیی که در کنگم هم هست همش متماهلین که بگیم نفرون نیست ولی نه هستش روز در کمس رو که می خوردن روز دلشون آیمه در زنگ زلم آمد اینجا مستیش نیست بر سار تو روز که تو مسته ها و اونم داره گیره بس روز برکس به اونر که میخوردن روز دلشون آوینه در زنگ ظلم اندازد آن زمان وقتی صورت شب خرگاه پرده این افق عالم رو و تاریکی یه پرده که اندخون دوره مثل صبح مثل به صورت جاهد خام که این کار میو جمع کند پخته گرد تا نظر بر میو خام اندازه میو خام کدونه میو پخته کدونه از کنم که این مطلب خیلی مطلب مهم نیست و مدتها خودونده ما هاتم حضورت موندودن که این چیه و قضیات چه خراجه مطلب این است که در مذهب عبدالو همیته ما اگر شراب جوشیده باشه حرام می نجستن می کربنشن حالا اون تو همون جب من نمیت همون شد بعد سالیان درست بکرم که این میزیزیده چیه برای اینکه که شراب بذارن به دوشه در هشتاد درجه میترده که دوشگاه تا همه الکولش میده یه چیز که اصلا الکول نداره و این قبل خوبه هم باید هم یکی باید بشه به قول اینا یعنی سلسان بشه حالا سوزیر بر شهر این مسئله هست و اگر شیرینه یعنی اون چیزی که میتونه تبدیل و الکول و شراب کشه به جوش خوننش رو بیگیرین میخوان شیره پس رسقه هایی بود که شیره این خفتن دوست میکردن شیره این هلورده این گفتن سابق هم شیره شیده انگور انگار آقا نبود که برای اینکه قرند از روسیه میومد اومد جرون بود انگور وقت بخ چون بسیده هم رو نبود انگور خیلی هم زید زید می شد ناشان هم که بودن این که انگور زیاد داشتن مثل برد ملایه سر تبدیل همه دون اینا نمیتونستن انگورشون مصطف کنید دقل میسن بخورن یه نقش هم که این سرکر بیندارم بابایش که بخورن نیمون زایه میشه اینا را آبشو میگرفتن میجوش موندن شیره میخورن بعد شیره سفید به شیره سفید همون یعنی با بر... کفگیر بارش میابضوانی بشن بر علیز و سفید. مثل روغنی که سفتید روغن حیوانی که سفت بشید زمیترون اون طریقه یکی هم شیر بهش می که و واسه سرک شیره می گفتن که اجه سکنجبی مثل دیست سرک شیره و فضی و شیر فضی توس بیترمی دیار شیران ارزون مثلا قند و شکر ده برابر شیره قیمت حالا درست و عکس شده یعنی شیره قیده که نمیشه اگر پیده شد به قبل ای که 20 برابر مثلا قندوشتا قیمت دکونه شیعه پرز به مغز این که این آبه ریختی و این جوش این نجست تمام دیگ و ملاقه و دستای شیعه پرز و پیشبندی که دست اگه تراشت رو همین نجست اینا نجس هست تا وقتی که این آب انگور بدوشه دو سال بفار شد یک سلسش کنید وقتی یک سلسش موند اون دستگاه شیرفت پاک میشه ملاقه که زدن به انتقالش رو به نیرون پاک میشه پیشبن چند پاک میشه همین پاک و این روش میگن سولسان شدن سولسان، با حال عربی شنید دو سلس سلسان تبن یعنی دو سلسش بره دو سپاشت بره, بره یک سپاشت این پاک می شود اینمال شیده انگور هست و باید شراف هست عبو حنیفه که مذهبش مبتنی بر پیاغ یعنی بر استعدال منطبیه میگه نه اینه که آب انگورو به دوشونه نهش نجس میشه و دوسته بامش که رخ پک میشه دو شراب هم ها به انگوره ها. دو سوزنش رو بجوشون هم پاک شراب کسی بخوره پاک نجست هم چیز هم حالو هم شراب دوشده چیه؟ این چیه؟ بله سالها من که این شراب دوشده و در فارسی یکی و سه یکی خوردن توی توی و توی سیمان منوچهری سه یکی و سه یکی خار و سه یکی خوردن زیاده همون یعنی دو سلسش بره یه سلسش بره خب من مداتا را این یک کتابی هست بنامه راحت, الصدور. راحت الصدور و راحت و صدور آیات. محمد علی ابن سلیمان راونگی محمد ابن علی ابن سلیمان راونگی راونگی راوند دهیز در ایران از اینکه اونجا ها. و این اهل اونجا ها بوده. این کتاب رو هم در سال 599 نوشته این در تاریخ سلجوبیان اسمش هست تاریخ آل که چه افمسده کتاب خیلی مهمیان هست اجامبه یک تصل مفصل درباره باقی داره که توابا اونجا میگه و فضلی این از اصلاده خیلی سال 359 این بابا این کتاب رو برای پاتیان سلزوگی نوشته حالشان خب پول داره قدرت داره همه چی داره میخواد خوش بگذارونه ولی خب جلوسون میگیره یه شراب حرامه یه شفرنج بدهی حالا این میخواد هم کلاف نکنه هم شرابارم بخوره یک چیزی داره ناصر فسرم یکی شعفه ای گفت که شطرنج مباه هست مده هست شطرنج به اتفاق علمای اسلام حرام میدن که قمر نیست باید که قمر درش تصدف باید تصدف باید حاکم باشه شما تا تو که میریدید نمیتونید یک میاد یا شیش میاد کارتو که میکشید نمیتونید و اصل میاد یا میاد. ولی عطا چون جلو یک شوک تصادف داشت وارد ما درادو که مال به سر کار با هلستان که که گفتن که این لحظه یعنی وقت طلب فقط شواطی و فیادوزل هوا فقط برای هاج شدن و نه شدن جایی با بعده بود که حلال کردن شدن بار هر صدیم از این امامای ارزانه چون نصرفه چون شیعه بوده به هر کدوم یه اینی میگره صافعی گفت که شطرنج مراه هست مدام کجمه بازید که جز راست نپرمیده امام بو هنیشه به حضوزوید درباب شراب که به جوشیده به خور دانه به برد برد و حرام باقیشو نمیخونه چه یک خود از خودی به اول اخلاف میشه نمی همین سرابش او میگه که شراب دوشیده بخود نحروم نبشه صافیه هم یه شرپنج آقای راوندی سدور آقای راوندی میگه پادشاه اگه میخوام شراب بخورم، گناهم نکنن خب شراب دوشیده بخورن هم بعدش خوبه نعشه میده قشنگ و حالا آدم خوش میکنه همسی گناه و بعد خانم مرعشی دستور صافت میشه و دوشداره میده گونده اله خدمت میخواهم ده بعدم میگه که بعد چواهد متعدیدن میاره که فلان خمی فلان مرچه تو الاسلام و فلان که هیچ را خاضر نمیده کچه که این ترکه بکنه در مرض نوت بود و عطبا آمدن و گفتن که این هیچ راه نداره که اینکه شراف تا خوب بشه و این گفت من که نمیکنم. کنم اینکه گفتن که شفا در شفا در, شفا در چیز حرام و خلاف شهر نیست بنابرای من این کارو نمیکنم. کنم گفتن که نه اگر جوشیده باشه به مرتب عبد و درست و فلان امینا گفت خیلی پاو اگه دوستی باشه خور. من اولین شما میدیم من دستور میدونم. دستورش درست نوع کلا شهر ایز ساختن کامل هستین دوله نگه ده من آب انگور بگیرین نیست من آب عبد بریزم توش نمیشه سینم به تقنید منش بره درمانش کنم ها بعد این درمانه بذاری تقنید خیلی هم زود که تقنید می شه و فرقه خیلی سلی خودم هست از ایش اشکالی هم نداری بنابراین مه جوشیده ای که درست می‌کردن، کردن نبوده که الکل کلش دست بره خانم که شنال نگران بگیم که اینا بشین زهره نبیر میخوردن و بخشورش هم این بوده دو سلس آب بهش اضافه میکردن بعد میزشوندن تا اون دو سلس آب بخار مایه صاحبش پتش میده بعد هم میزشوند تحقیق اینو میگرستن میت میشوند میفت بخش و در این به قری میتنن بشه بعد تخنیش می‌خواند این پرتو که معمولاً شعابی که در پورتوحال می‌خوزن در معموله پورتوحال و در کتاب رموز حمزه که پیداست از دوری تفاقیه چیز رو که باست که می‌خواستن بابا رو حمزه رو دیو می‌خوز کنند یه شعاب یه بودن گویم چیل گفت این شعاب رو بله فرنج و بلکشا پرتقال برسود به این خیده داروی. بسنه بسنه رو. در داروی یوسیقی شکته بیدن خود با باید فشلیش شفاش بزنه و حبشش کرد خانه برحال این پورتو که حالا بسیار تو اپریتی در اپل قضا میخورن و کمی هلکولش بیش از شرابه و فند و سیرینشن بیش از شرابه و یه ذره خلیزن هست این میپخده اما حیروفان ملتا به عربانی شد یه دوزومی نهش این کار رو پایم همون آبه رو بخار میکردن این دو صلتش میره باید هم یه صلتیگش رو چشمیرش می و میشه چون و و صدور این دستیر داد ما رو از سرگرد میداره برای اینکه سال با من صادیان من به فکر این بودم هم وقتا کشمه ای خانومه بود نمیدونم این صدرت ها هر کش بوده میخوندن توی حفظ اینجاها بعد همهش بسیدان که یا سه یکی و یکی خوردن توی قابوسنامه توی منوچهری همونجور مونده بودن که این که چی میشه؟ این که چیزی میشه؟ قابل خوردن این که چیه؟ به وقتی که کتاب ربسیگو رو خوندن بودن که اون بسید را یک تحط بر آخر کتاب برمان تحط شراب تحط برداری شر این با زور شهر دید دوستان اگه الله خمان به اطلاعات دوستاری بستان برگاه شرف و برگاه شرف رنج به راه رو هم میباید به هر حال میه فختر کسانی میخوردن که دلشون می‌خواست که شرف بخورن خلاف شهر هم رفتار نکنه. کوسه رشتن کوسه که رشتن نمیشه ولی خب بگه فکرصواری دوله ولله، این درست میست ولی به هر جهه وقتی که خام که انکار مه رو جهد کند گردد و نظر بر مه خام اندازد مه که بگنه بیگنه آتش کند و پخته هم داره اگر این شراحات خام هست پخته بزار بهتر به هزار سخت خم. خم که از این پخته شود هر خمی گرچه ماه رمضان است یا وز جن از هل چاسه میگه هم شراب خام است هری به هزار باره بهتر به هزار سخت خام. زن نه که بود پخته شده هر خامی گرچه ماه رمزانه هست یا آخر چان اینه همه اشارت به نه پخته و می که اگه شما می که به دنبال کار عدد و دنبال طریقات عددی بعد بالاخره مثل من بر می خواهیم به این مشکل پخته چی چیه؟ خب این شراب حالا الحمدلله دیگه ما از کشپاتی می گرفت آزی که پوستان رو بفرنیم که حلال طریق ساهر هست از کنم که کار کنم درستیم کنم درستیم که این کار میگه جمع کند پسته گرداد چون نظر کار میگه خم اندازد یک نسخه فقط دو تا بهت داره نسخه مرحوم قذبینی که داره که باده با مختصف شهر ننوشیزن عاد. که خورد باده سنگ به اندازد و بعدش حافظه طرز کلاح خورشید برار بخت تا اردان مه تمام اندازد و همون بیت هفتون میگه باده پرمه شهر ننوشی بخورد باده فنگ به جامعا دازد. ارز کنم که اینجا یک نسخه نسخه تا داره کخورت داده هست. فنگ به به نظر من کخورت درست داره که این دو جمله به هم رد نداره. باده با و محتصال و جهات رو چرا؟ بیرا که اینا یه جمله که هم به خورت و عادت و این جمله به هم ربط شده شد تا این ربط شده از تیگه که خوراک و به نظر من درستان حالا درها هر از این مختصف و عادت قبلا شهر کارش انزا ارسان کارای خلاف شهر بوده که برسی کنه از شرافورستان و شرافوردان بعد رسید این به تیمانه ها و وزنه ها با این ترتیز که گفتم که دولت برای اینکه تحلیم مستن این چه تیمانه از بلود برای چیزهای برای مواد خیلی گرانده ها مثل سلا و علمات و جواهر و همتال اینا که اقدار خیلی کمش عرضی بیاد بشه وزنه های دوشیشهی میتاختن برای اینکه یارون نتونه تخلق کنه از کنار که صحبون تو وزنه های تلوزی رو بلی ثابتن اینکه چاش رو یا پیمانه های چیز رو های تلوزینا رو تو چیز اینا دولت اینه همون دستگاه محتصر میداده به اینا برای اینکه نتونم تخلق کنه و این رس ها دوره پهلاوی اول بود که سنگهای تراجیوی تیزا بودن سنگها رو همار سنگای که شکرن سنگهای یکیلوی و نیمی کلویی و بردنهای که زیده بودین دیگه توی تهرون بکار میبردن اینا بردن یه قانونی که بودن خواهد چیز کنم باید لسه که سنگ یا اونگش توی تراجیوی میبرونی یک حالا اگه آدم خوبی بود یکی درست بود سنگش اگه و این کنسولیشی اینقدر بلای تاگیمده که یک سوگه راجب و اجازات این ها هستیم بیلن للمتخفی متخف و دو تا چه متخف یعنی که میگن که اونجا از همه جایی که پتر و میگه تا دیل حال متفکی حالی کنسلی کنم کیاب از تو دیگه اللذین ازکال و ارن و یخصوبون و هم و وزنی هم گفترون کسانی که وقتی بردد به مردم قیمانه میگیرن و وعده میکنن خیلی چرد سرخه ایمون میکشن یعنی مثلا این پیمونه اینه سرش هم کاملا بپر میسونه اگه خوشش میخواد که با بعضا خالو هم او بزنو هم بسی کهل که میخواهم برای اونها یا بعض میخواهم برای اونها یخسرین زهر میگنه کم میگنه اینا جدشاشون چایده اید برحال این کمتروشی از خبین بگرد صد ما عبر کردن، چند فروشی، جلوگیری از بنای برساره، کارهای دیگر خلاف شهر، انزا، حکام همه جورش کاره پاسته دید. همه ها یک کتاب درجی، یک که که کتابی هستن، الهز... هز... عربی، اصلا عوض نمیخواد این کتب ترجمه شده تارسی زیر عنوان آین شهر داری ترجمه دکتر جعفر شعر دوست بنده و هم دوره بنده دوره دکتر آلوزیت که مدد هم رئیس جعفر شعر از اصلاف فازه دیتانشگاه تیران ملاحا کار ترجمه معلوم و چپ آه، این بسیار مطالب جالبی که چهست زمین این که بحث می کنه که وضعه که محتفت بچیه بعض اجتماعی اون روزگار رو میگه چه که چی بوده تغلب بر نواد و قضایی چی بوده کلک هایی که می چی بوده بعد مسائلی که اتفاق می چی بوده اینا همه رو که خیلی خیلی خیلی ازوار اجتماعی این کتاب کتاب می و اصلا اون تازه نشده بود که کار کننده هست و اگر دویی بود کار مهمی کرد و اصلا اگر گیت نواز حتما اینو مطلوب البته در ضمن اون مختصر بعضی شهری بوده اینا کارهای خلاف هم میکردن مردم عزیت میکردن مثلا بعضی شهرداری فیلیپ بعضی اندیشمندش بام میگرفتن خودشون حرف میکردن از مردم ایراد میگرفتن همین کارو میکردن و یک نفر اختصاصا در دیوان حافظ محروف شد به و اون مبارزه دین محمد مزخفی پدر شهر شد. و دادیم که این داد این داد این دین دو سه سال بیشتر بکارند و سالی به می کرد و که محروف شد اون به به و اکثر جاهای حافظ مختصف دیگه این شاراش به باید انجام باشه بلید. اون البته حفظی جاهد شده اید ولی اینجا شاید نباشه ولی بیشتر جاه ها اصابهش بگیر امر از پادشه ها, ها که از می تویی اینکه بنده در و از محتصد, محتصد من که باشه محتصد میتونی که من نه اون رندم که شاهد رو کنم محتصد دانت کنم این کارها زیاده از این قبیل و اینا بیشترش گوشه و کنایت این در حال چیزی چیز وضعیف احتساب و وضعیف مقتصدی اطلاعات جالبی را جب این ریزه داره و برای اینکه که توجه ام بفرمایی که چقدر این تخلق قدیمیون باید قدمتون بگم یه روزی اون دوست راجی من تو مجلس باید برونداره که هستی باسم باشد، کرد، برای گزران زندگی و حضورت موسیقی مجلس فارس کرد مرمون راجی، وزیر بهتر و یه رو بر در مجلس کنا یک سطخن را میکرد برداره تغلبات و مواد و و به تفصیل که بر می و بوستن و چه چه چه چه یک ساعت خیلی فاحت. از جمله گفتش که گوشت زمون گاب رو می گیرن می پزن میکنن، خشکش می باز با رنگش می‌توانم یعنی می‌میزن تو به زعفرون به رنگ زعفرون دارم یعنی کاتی زعفرون می‌توانم یعنی یون از خال بوشت پفتو رون دو عبرو پر یونت یک از خال زعفرون و برارون هم نوره یعنی تمیز و اقل رو گرفتوی نداره تو تو دار سالها بعد. بنده مطالعه دیوان خواهانی بودن خواهانی, خواهانی یعنی سال و بوده تحلیم خواهانی یعنی سال حدود سال زندگیش تو دیوانش برخوردن به این به میگه هر جا که نوگلیست شخصی هم قویم او آری به گوشت گافت بود با روزه کنم. داره خواهانی؟ که باید سال مثلا در سال پنجا دوش راژی می این هستی این تغلباتی توی ساره و کار محتسبی کاری که بیچشت لازم بشکرینه این که بایده برنفت حطور شهر نمیشه. بخورد قادرت رو بند به جامعه کنید. می‌خوره، چون, چون حقیقتا اعتقال بگید احتساب من نداره ولی بعداً هم تو میشنه. نمک ورانه نمک ورانه چیز آستان در حید تو منزور دو خوش درده بسید نظر برمی خام اندازه بینم باید شایه مسئله بله بله ساحت خام، خام، مونه خام، خلی، مونه خام، خب که نمشید بله بیشتر این چیزی که مثلا به به یعنی معنی خب چه هم صفحه شده؟ یه بار توی از وقت تا اونجو که میدینه و خیلی هم شده. یه از معروف بوده به زندان سکندر برای اینکه زستان اسکندر دارم که زندان ساخته بود و شیراز و فارس هم معروف در اون که سلیمان برای اینکه و سلیمان در افتانه های ما به هم آمیخته شده اینو بارها دستم و چون تخت جمشید، اون فرس پولیس و اینا برای بناهای پاچ و تخت جمشید بر فارسه این هستی سمان ملک سلیمان و میگه دلم از بحشت زندان سکنبر بر رفت بروندم و تا ملک سلیمان دورم یکی هم میگوین که رفت به جزیره هرموز تواهل عرض کنند که خلیج و تنگه هورموز چیزی هورموز هم اینو و با چیز هرموزم است، سیادت و هرمز و بسر اینو و خرموج. و رسول و فرام سفر بکنه او او او سلطان و او شعری بود الله و سلطان و شعرها رو که تاهم کنند، شعرهای از کردند، نه پسندید گفتم کردم یه چهار روح از شمس دین محمدن و جوانی سازه تا در میدان سخنگالی بگشته و به یه سرقه تا رو بینده بحثور پر می میدن و خواهش اکمامشو و خواهش اون به اون سه برسه اقوی و لالون می روید، اون بحث و سلاسه و غفت وقتی می روسته پاچنگ به که بیاد به که گفتن به عوضش که بیاد به هم یک با بنگاه به خاجه میاد ببنی چیز ببنی هرنوز ولی حاضر نمیشه سوار به شیفات بری به اونجا قطب بوده فرمیددار هرنوز در اونجای خود خودی هم به خاجه پربت می‌کنه، کنه به خود اولادت به خاجه داشته به هر حال خاجه میکنه و و که ای با با این غزل رو و اشاراتی این هست و هر حال من می که دمی با به سر جهان یک سر نمی به نی این به کوی میفروشانش به جامعی برمی گیرند وی سجاده که یک ساخر نمی ازورد و هم کرد از این باب باب این سر که دین جام برم بردست خلاهی اما بس آسان این اونو در فرقنه بروابی یه سوی بلد گفتن که این توفن به صد جوهر که روند خود به مشتاقان بپیشن که شابیل جهنگیری فرقنه لاشتار نمیازد شحافظ در فرقنه هفت از دنیا و یک جوه خدمت به صد پنج <تخرج> وقت به جهان یک سر نمی عرضن. یکی از اصول اصلاً مقام رضا وقام رضا به میشه خسنوگی عبارت است از این که آدم که اونچه چه اون چه بر او فکر کنه از صرف حضرت حق برگرامی به او راضی است چه بد باشه چون دید. حالا البته گفتن که باید تسلیم هم باشه یعنی اگر شادی زیادی خود رو گم نکنه و یا بوبرش نداره تو که وقتی به یه صنعتی میرسند و یه ممصدی میرسند یه شمع جلودار سمیز تو از اون هیچ هیچیو اصلا گفتنشون نمیشناسند این باید اگر هم قد وقتی چیزی به سارشوند بازن خودشو نبازی و در ارحال آرامش نهاستایش و آرامش خودشو رو تکنه یکی از مسائل و اساسی تا سر بکنید برخواد تربیت میخواد یعنی آدم خودش رو عبد کنید که کم فرصت نباشید به ایسته بر برابر صبر بکنید گفتن بر برابر شادی ها کم زرفیات نباشید خودتو جوان کنید من داستان های بسیار هست. اولا مثلا دو تا نمیرن به هم گفت بودن بچه قرار خرار روشتن و بودتا نخواه شدی و هم چکا همیزانی گفت خارطی بودن و اگر خبسی خرار رو خوب و هلو خرار روشتن چون مثلا ای فار امدهی بگی کنم مثلا نخواه خاضی شد، سهب و هزن بعد این بابای رایت این تحاظه که این ببینه نمیشه کرای صفتا ها یه رو از ساد افتاد بعد این وقت دیگه نشو هفیدش که این تو تو ها من هزار مدت های مدید هر روی جا زنوار آخر وقت زیر اون درخت چنار رو جلو در افتا رو توست من هم زراش تاهم تاهم پنجره کسیم زیر اون درخت رو برخون اون اون نه و دینا نه هستیم حالا اینا اینا خلاف مرد نیست کسی که یه چند وضعی داشته باشه یک, یک ملتاب فلسفی هست دابیونان قدیل ملتاب رواقی رواقی و اسم فرنگیش هست من مطابق اسم هست ویسیان ها یعنی های اونا برس میخونم حسن میچنه چیز شابیه اینه برزای رواق های اونا نگست چیز میشود برزای اونا نگم فلاسفه اینا با که هیچ چیز نه اصلاحش را آرانه رو به هم و نه این خوبی و بران قرار دو تا از این آدم خیلی معروفن، دو تا فیلتروف از این یکی هست مرکوس اورلیوس. که این از خیلی طبیل یک پندنامهی داره, ای داره این پندنامه شو پارسی ترجمه تو من تو بازار علا سازی که چطور حالا <سؤال> یکی دیگه یه بنده زرخری دیدی بود اونم از کشکالانی مثلا بران اوپیس پتیس چکنگش میکرد تا این رو صرف یه پیچی قیبی و خشاب کن و این همدوز کارکت و اون باید رو تهمهار میشه بعد که این های فشابی که کرد گفت اگر یه ضرور بشتر خشابی که هم و هم این این فکر کفر این این الان به هوا راسته بود یه ضرور بشتر خشابی است. که هست گفت با همون آرامه قرارتون بکنه هم رو میتوانه کار و اینا واقعا اصول مردی یکن همینه گیده که آدم بتونه و خودش خودشو حفظ بکنه و آرامه شو آرامه شو خودشو یعنی بتونه بر مقاول محصود محرمت دوست کنشه بمی با خم به سر بردن جهان یه سر نمیارد جهان یه ریشهی در نور پاسه جی. جی جی یعنی زندگی همین جی زی زی از زیستن الآن لر پاکستان یکسی رو میگه حسن میگه جی یعنی جا جی میگه یعنی, یعنی با در جی. جی و در عبستایی همین هست جی جه هم این جی شده جی هم جه هم یعنی جای زندگی الوپنونش، الو کنونش، الو جیان یعنی زندگی، یعنی جای زندگی. به ازبزارای دور سامانی از تنها ابو عبد الله جهیانی. جهیان هر شنبه یک جهیان دیده. یه تیهنم باید جهان yani یعنی جهان ولی جهان و جهان و باید جهان یکی یعنی جهان یک سر نمی به نهی بخوش بلغنه و از این بهتر نمیارد خیلی خیلی حفظ قرقه شو و سجاده شو و بساقه شو بعد اینو باید به نهی فریده البته اقلا از ذر شد بکنه بیارزش گفتن چون نجس نجاسات اصلا باید تنلق نکنه وانه چرب که کسی نیست از از چون چون نبو سای بشید. اون شهرات هم خورو تحنالب من الو من الو فروشنده است، من الو فروشنده است. اصلا مالویت نبود. ما بنابراین اگه انظار شهرگی بگیری فروختان به می یعنی فروختان به هیچ. اما از ازار اجتماعی، نهی مشنون راستی و درستی و شدن. به همیشه چیزی که حفظ میگه اینا را با نه عوض اونا وسائل دروی و ریاکاری هفته میگه خرقه رو با می و جای آن است که سجاده به می گفت. خرقه و سجاده اونا و همسال اینا اونا وسائل و ریاکاری و طلب زدن و مردم دیل یعنی و خروختن به می، بعد یعنی وکری و وکرنگی و راست بودن و ظاهرو باتن بسن. اینی که در هر دو صورت گفتن با حفظ، حسابش برسید. میگه به نهی بهتونی شکل که این بهتر نمیده. یکی این که این شد. دفعه اینکه این درد، وسیبه ریاقاری و درویی اونه هست، درد رنی خرقه صحبت کردن یا نکردن، توی یه جامعه پشمین داشتن. یه این روی تنشون میخوشیدن، برای ریاضت هم دلن بهشون میگن اینکه د یعنی پشت و سوخی یعنی پشمینه پونش به خود حافظم هم داره پشمینه پونش پرانکوان که از عشق نشیده اصلا از مستیش و هم تو تا بعد, همون بعد این رو از بزرگتر از پیر به مرید میرسید و همینجور اعدامه پیگه بنابراین هر قدم پرانه بود و قدیمیتر بود و وسط دارتر بود عرضش یعنی یعنی و اینی زیادتر که هم درخ نلمع یعنی رنگارنگ یعنی رنگار رو زدن برحب بلو. بله، بله گی بله، یک دو هم سکو سر هممینی چونی دونست؟ کل جهن، تو هم یک سر کل جهن، باید و و این خرگه رو قرم کردن حفظ میگه بسوزونش خرگه رو به مراد برسفن از ریاکاری ارتباطی است و این خرگه شهار سپوکیان میده اینکه های hey, میگه تین چیز کن این نشان هستی با سپوکیان و البته فکرش فکر سپوکیان هست با اینکه مطلب می کنیم و الواز تئوری، اینا می بفنیم مرتب ما مرتب ما و و از خوزوشنگی و امسانگیت و در عمل نه این است که بمی بمی به نهی بفروشتر از این بهتر نمیازد و به کنگ به جا میگیرن میگه خب من الان بیارم بفروشن ولی نمیخرن به یک جامعه میان، میری خرمید. تکنی که میفروشانش به, به جامعی بر میمیگیرند. بر میمیگیره می ور میمیدارند. و برداشتن به معمی هم تو کردن خروجند هست لافت شنگید. که میکرد ور بردار وردارد مثلا اینو ورم بگیرد. یا اینو وردارد. چه تا وردارد ور مثلا بردارم ورم بگیرد. یعنی بخند. بار برمی گیرند یعنی قبول نمی به می کنشانش به هم را به جا یه جا قبول نمی کنند زهی سجاقه یک تفور زهی تحسینه به معنی خوش چقدر خوب ولی اینجا برای میشخند و تنازخور بهتار رفتیم. ده به از این سجاده این که یک میدونید می اون چیزی بوده که زیر پاشم چون جایگاه من از و با معمولاً که تو توی ممکنه پک نباشو اگه بچگاه روشن که حتما بچه یک کارهای کازه آل کسید و به هر حد احتیاط داره قول گذاشتگاه می گفتن احتیاط داره احتیاط داره یعنی نور حتما پاک بریدان ممکنه نجسی داشت و چون جایدان ها گذار برد پرک باشه یه پرچه یه چیزی که مطمئن بودن که نجس نیست می زیر پاسون و این رو مثل یه خالیچه دوچی درست میکردم که روشم یه نقش محسوسی داشتا بیمه محراب نا با بیدید سجابه زهی سجابه ای پنگ را یک سافر نمیاردن رقیبم سردانش ها کرد یعنی رقیب مرا سردانش ها بارد. چند بار اینجا گفتم که رقیب الان معنیش اول شده الان روی به معنی کسی که با آدم در یک کاری همچشم و همکاری می و مسابقه می به کار می مثلا در عشق می گوی این یعنی مثلا دو تا یک در می گوی این به من. یعنی با مثلا با من بره مسابقه می گیره می اصلا بر قدیم این نبیده، رقیب به نگهبان بوده و مراقب مرافق رقیب تو حافظ سعدی همین مراقب و مشروب کسر خوندرو و دفتر زیبا حتمام یه نگهبانی دنبالش میده که اینو گولش نزنن، ازباب درش نکنن، باش حرف نزنن و واضح باشه باشن حسیب نرسونه نرسونن کن بعضی بودن که مثل حافظم من برو باوانی شدیم ورش که من گولن یا زخی توزنن یا گرم بگیبن یکیسی دنبال کسی که دنبال شاهد دنبال آران خوبی و زیبا بوده میشه که سر وقتی هیچ معنی میگه نداره من همکار اصلا نیست برحافظ میگه رقیبم سرزنش حافظ از این باب رفت برکار رقیق نارو خیلی سردانش تو, سرد تو از این در بردار یعنی آن برو بلکنی ها کرد از این باب رفت برکار رفت برکار بیدن یعنی یعنی از این برو چه افتاد این سر که خاک در نمیاد کرد. سر، از به رئیس وادانه بگید. و هنهای وادان هست سر، که سر ما عرضی شدیم، خاکگارا نداره. چی شده که این سر ما با خاکی داره خاکگاره عشقا نمیاد. بعد اشاره می به قصه سفرش به غرنوز چند که از سکوه تاج سلطانی در بیشتر نسخه ها در از من همینطوره سکوه تاج سلطانی که پیم جمع در اون برجم خودم هره میخوانداریم ستا و ستا ششتا و, ستا و, ستا ششتا و ستا نه تا نسخه ره. از این نه تا بر یعنی اکثریت مثلا هم دیگه گفته در اون تا دوزو خانداری این دوست نوشته که اون برای دیر زیرون حالان علاقه بای نیست الان برای لیوان ننده ولی قدیم می گفتن اون رو برای بیجان به کار خیلی هم به کار همیشه این توی حافظ یه مقدار زیادی غیر زیرو جسمی جانو او گفته همه جا رو دفت و خنلوی چه عیسریت دوست و توجه به عیسریت نصفه هم نداشته ولی تو من دروس و این سبت اون روزگار ده سبت اون روزگار نیشده بگن و حتی بهار هر مثلا گویند جنگ جنگ و طغانب جنگ تا عبد با با ای ای. و تا این به ای با و و و بعد این که کلانگسان دشه پرنده بنگریم دشه پرنده آزمان به درگ بندر کنید کلانگسان دشه پرنده بنگریم به هندسی ستون خوشنماگ اون چه پاق پاق عبر تفتند همین تگرگ مرگ عبر مرگ زاد اون هزاد به زهر بمید دروس عجال دوانت تو هست برای این و تا دور ادامه داشته ولی همه جا رو که پین جم برند و برگست بر بلان اما به طاقتی سا من یا از که بیدونیم از سن صاحب هر جا میره همه دارزی می کن در ماشی ماچه خواهر می کن مهر میخواب کار داره دستیر میده فورا همه میده و همه ایزام کن یه فانتازیر کار و کنید این رو این ولی که نه اولا این شاز هر آدم دیگری در مرض خطه یعنی صد و دین جان روزم این که تو کولستونی قسطه یک که یک بود و همه هم بشه گدایی که بود و رخه بر رخه دوسته و لخه لخه دوسته یه لخه از گرفته یکی پاچه این قدید به یه روزی پاچه ها یه شهرون مرده <متحدث> بود <متحدث> و بسیار بده بود و اولین چیزی که از بروزینی هست که این سا دیگه می این سه پهنه خورده می که می برن می خیلی می دوستی اون شهر آخری دیش شد فهمیدم جدایی از اندیشان نهفیم. بعد که وقتی سه‌وزن ساده بدویم گروه‌مان دیدیم که عزت نیست ولی و حالا کیاب می‌گوییم شنبه حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا خیلی رفت سراغان اینو بعد اینم دیش رفت شد و فوگیرهایی در ببه و خیلی اینا فضیره اون فضیره اون بعد اون روز دیگه که خیلی تبریک هم با خدا رو شد وقتی با که باب آن روی میشه جای تخلیف که نیست پنمه همی داشتن و امروز اندوم و جهانی هر آدمی که پیونه هم دیگه از اشناگی راستیش بیاد چیزی سراغ ندید شعه نرحوم روی یادشتای نرحوم علم هست که گفتنشه میکینه داشته هم گرفتگی داشته شد ولی این جایی بلند می شده با یا با هوا به هم نه وقتی بارون خدا یعنی مسئول اومدن یه بارون می بینید ایس جا الان نوشد اینا رو باید من و این را سلطل تهلاوی منتشر کسی هم که امتیاز برای خوش بس دین جان در این اگه یه خود می آم دنبار در کسی کلا هم این حکرم می کنم دیمیشن و می کرد انا بنا و و را بنا چار کار که موانتون یکی از این که چند اما از از اسلام از این ایشون از این دستگاه رو خوشتن. این دست توی این مجره بوده تا قبل عجیب تا دیگرون و در همه این روزگاران خوشتن بودی که یه روزید قرار هم بوده بکشن. بکشن ارون فاطران یه دست رو پای شاروی که این سید رو خیلن او او او او سو رو که میخواد به بریاور منافق می شنا منافق می شنا را خواهی سلامت سفر بر بر از خطر دیگر خطر زیرا که سود ورده بر نبند با برده از خطر بر. با بنابرای کسی یه عرض که گفت کاریم، یست رو می کنیم، یکی هم مثل بنده، اونسی خواهد آفله، مزاج ایست اونسیجا، اوتمایب ندوده، اونگه خیلی کشنگه، سلطانی، خیلی عالیه، خیلی هم دلکاشه، اما عرضش این تاونس سرش رو بسه اونید، حالا مطلب یه اینه که دعوتش گردن گفت بره بنده ها کشکی سوال شما رو بس بو یعنی بویه یعنی آرومی سعدی میگه به بویه انتشایی در حرم بیاساوند حرم یعنی فعبه به بویه انتشایی هزار با بویه فعبتگر فعبه به بویه با ادوال، خان و با نظر نوارد. اما دو بگرد ایسی خیلی. این توپنگ به صد گوهر مونگرد. بخش دور، گوهر هم جانی نوروارید و نوروارید رو با از بریاف موجود. موجود. که کشف با این با این, این و, و با نفس خود اون دوی ده اختفایی دیست کنید از می که یا دیگه که من اول <سؤال> به هوای سود که غلب کرده بر بعض کردم کرده و... اینو سر صحبت کرالات که با یک چیز تا این حاضر بیان کرد. پسی کرالات با و هنوز در افغانستان مصداق اگر سر از اروپا برویم یک این اینو و اتفاقا اشتباه به معنی چیزی رو شبیه چیزی گرفتنه اصل کلمه طلب کردنه و در ایران همین بوده او جدال سعدی و مطبعه هستش که گفتن مذنبت این من یعنی طبانگارم گفتم مزمومتی بیمان که خداونده هم شرمه هم که که غلط کردیم با ما خطا کردیم یه تا دو نظر شما ده بکه توخ جپرب� توخ درخت اما هست عابله ها درخت که تقربانه هل یه رست توخ می کبه ها بب توخ می توخ ما دون توخين مارف چه گپ بو توخون گفن چه گپ بو توخ خب نظر شما ده بگه باید که از با درخ بمیشتی هل یه رفتون بعض میشه کاش که بعض رو نمی کارن اینه بعض ولی گندانه نه خور رو بعد عمیق بکارنه ولی یه همیست که بیشهشون خواهی خوری میده درخ بیشه گندان اینا سبسی رو بیشهش یه و بازد. بازد من کارا نشونم که به بازد می کنیم تو تو تا برختیم دیگه بازان حالا رفتون بازد ری کاشتیم سیوه چشناترین به جنگ کاشت من خطا کارگیم خوردون دیگم بعدش می روشتیم ها بین اگه خوشت نمیمت شعر خاجران خود نمیخوندیم به نظر اینکه پخ می کاشتیم او روی خواهد که هر کارنده ایدیم میره یک کلمه دو کلمه ی هم از هم از دو یکی صفت اگر این یکی میشه از این بهتری اگر با همه افراد جنسش این شکرد این اون اونی که با اشون مقایستی محطان دیدی ویدی برطری دادن چیزی چیزی از این زب یکی از اگر رفض ورد علاق جمع این به از این که اما فعلی با اونی صفت میاد علامه تحصیلی ها نداره ولی شد خودش بچه یا یا هر میریم بای آبی تر فرها تو را هم که برای رو خود که چرا؟ طبیلی که معشود وقتی جلده برای جهانگیری برای تو هر و اصلا معشود حاصیتش جلده که چیزی زیبایی با وقتن هم که همه عوض که حریف میکنند لذبت میدارون این میگه این درستی بعد از این وقت همه برمیشه شدیست البته که میخواد میخواد باب خود اما زحمت آدم استاد انتصاب نگروت بالو ترود شش کودکان آنها که خب و یک دیل برشتن با یه کلاس این من من من هم پنجاه باتا بود. چار سرانه آب و آب، سه روست، و آب، یک خانه آب و آب، یک مزرعه و آب، یک کارخانه آب و آب، یک مزرعه آب و آب، یک کارخانه آب و آب، یک مزرعه آب و آب، بعد بنده زم داشتم و دو بچه و و بستمکه یا آدمی و باید میگوها چند کند سکید و که کنم میمدن و درستان میگفتم و درستان و حلاقه میده چورا و قشنگان میدوند خود بارم این موفق من این تو رفایش خود کاریم مثال اگه این خود بان چه سلا و هفتاشم بسید چه بیدیم هم ساعت بعد ما میشود مثلا ساعت ها از در بیان لگی من حس میتاردن با که دو بره روزنم که چیزی نفه جدی با و این هست که درست که ها هم دیست کاری اما باید این این دو خود جهانگیری رو که نمیم و بابا سوادم زیاد بود، یکانم کنیم، یکیش با یکی کنیم، یکی دیگر کنیم، اون کاری است که که سراغ آن می‌آید، یکی دیگر می‌آید، پس که دیگر می‌آید، یکی دیگر می‌آید، پس از آن